سر چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، دیگلیز تررش تو و از سر فسوس گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند، تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زن سفر دراز خود ازم وطن نمی کند، پیش کمان ابرویش لا به کنم ولی گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند با همه اطف داو منت آیدم از سبا عجب که از گذره تو خاک را مشک خوتن نمی کند چون ز نسیم می شود ظلف بنفش پرشکن که دلم چه یاد از آن اه چکن نمی کند دل به امید روی او همدم جان نمی شود جان به هواوی کوی او خدمت تن نمی کند ساغی سیم ساغ من گرهم دورد می دهد چیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند دست خوش جفاو مکن آو رخم که فیض عبر بی مدد سرش که من در رعدن نمی کند کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند تیغ سزاست هر کرا درد سخن نمی کند کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند تیغ سزاست هر کرا درد سخن نمی کند